بسم الله الرحمن الرحیم بلا حق و بلا قوته بالله العلی نظیم و صلی اللہ علیه محمد و اللہ علیه محمد الله اللہ علیه سیدنا محمد و اللہ احل سيما بقية الله في السماوات بلا رزين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعتبرو بما كان من فعل الله بإبليسة إذ أحبت عمله الطيب و جهده الجهيد وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة لا يدرى من سن الدنيا أم من سن آخره انكبر كبر ساعة واحده توفیق به همدلله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در کنار سخنان دلنشین و دل‌لواز امیرالمؤمنین میهمانیم و از خطبه نورانی قاصعه حضرت در مجموعه کلمات گهربار نهج البلاغه استفاده میکنیم خطبه این که امام همان گونه که اشاره کردیم با محوریت شیطان خوی شیطانی و اصحاب شیطان سخن میفرماید و حقایقی را باز می کند راهکارهایی را نشان می‌دهد، هشدارهایی را بازگو می کند و در این حال فصل طولانی امام داده سخن در این میدان داده است و بدور تردید عزیزان بزرگواران مطالبی در این خطبه امام میفرماید که از زبان هیچ انسانی برون نیامده است و به می میتوان گفت برون نخواهد آمد به این قسمت از کلام رسیدیم در انتهای هرائز دیروز که امام فرمود ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهدون اصله تمیزن بالاختبار لهم و نفیان دل استکبار انهم و عبادن دل خویلا امنهم فرمود خداوند صبحان میتوانست جنس آدم را از یه جنسی بیافریند که برای ابلیس جذاب و زیبا باشد ظاهر آدم تین و گل آدم همان گونه که گفته شد اما خداوند چنین نکرد تا آنکه ابتلاع برای ابلیس و عیارگیری ابلیس باشد همان گونه که قبلا فرموده بود امام این رو تسری داد این رو به نوعی عمومیت برای آدمیان و مخلوقات دیگر انسانها عمومیت برای انسانها داد و نکته عجیبی رو مطرح فرمود که توضیح دادیم مرور میکنم سری که اول سخن امروز خداوند ابتلا میکند, می کند می خلق خود را به بعض ما یجهلون اصله به چیزهایی که ممکنه اصل و بنیاد اون رو انسان ها ندانند ولو کلیتون رو میدانند. گاه ببینید عزیزان انسان علم اجمالی دارد گاه علم تفصیلی دارد یعنی شما اجمالا می‌دانید <تصفح> که هفت رکعت نمازی که در 24 ساعت می نیاز وجودی ما انسان هاست اگر نیاز ما با کمتر از 17 رکعت, رکعت می میشد ذات باری تعالی 15 رکعت میگفتند چاست و اگر حیام نیاز ما در حد نیاز بیشتر از هفت رکعت بود خداوند صدقان این رو 20 رکعت قرار میداد این رو اجمالا میدانیم. اما به علم تفصیلی چرایی هفت رکعت را نمیدانیم یجهلون اصله و چه رازه های این در شریعت وجود دارد که انسان ها یجهلون اصله بدفما تمیزن بل اختبار لهم خداوند این کار را انجام داد که تمیز و اختباری باشد برای انسان ها و اون استکبار و نفسانیت انسان ها نعفی شود و غرور آدمیان به کناری گذارده شود از باب اینکه که میگویند گویند سمکن و طاعتن ربناه سمعنا منادین ینادی للایمان ایمانن آمنو بربکن فا آمن. بروردگار و فرمودهای هفته رکت هفته رکت میخوانیم. اجمالاً اما به تفصیل نمیدانیم اما از سر بودیت. از سر پذیرش و تسلیم سر میآوریم آوریم در پیشگاه حضرت باری تعالی و پذیرای حکم و فرمان ذات حق می‌شیم و اون نفسانیت خودمون رو زیر پای بندگی و عبادت خداوند میگذاریم و از آن گذر میکنیم. این جمله را امام فرمودند اما آغاز سخن در این فصل از کلاممون فرمود فعده برو فعتبرو بما کان من فعل الله به ابلیس از احبت احمده التویل و جهده الجهید بسیار نکته عجیبی رو از همون مواردی که عرض کردم کسی نگفته است اینجاست عزیزان من یه ترجمه سریع بکنم اعتبار بگیرید انسان ها به آنچه فعل خداوند به ابلیس بود هنگامی که حبت کرد و نابود کرد اعمال تدیل ابلیس و تلاش بسیار او را کدام عمل و کانقد عبدالله و این ابلیس عبادت کرد خدا را ستت آلاف سنه شش هزار سال شش هزار سال لایود را شما نمی دونید معلوم نیست برای شما امن سن دنیا، امن سن الاخره که این سالها از جنس سالهای سی روز بود یا از جنس سالهایی که روز اون پنجاه هزار سال شماست روز اون هزار سال شماست و این یو من عند رب که کالم اقداره الف سنم ما تعدون از اون سال هایی که هر روز آن هزار سال سی پنج روزی است شما نمی برای شما مشهول است چرا انکبر ساعت واحده از آنی که در پیشگاه حضرت باری تالا خب این یه ترجمه گذرا به این قسمت زیبانی سخن حضرت بود فرمود فقط برو به ما کانه فعته اعتبار بگیرید گاه خدمت عزیزان اشاره شده است عین بر عبور آبر به معنای گذار است کسی که از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌رود نام او چیست آبر از این سوی خیابان به اون سوی خیابان اون محل و کشی سفیدی که شما رد می‌شید معبر گذرگاه آبر پیاده توجه می‌فرمایید اعتبار از این ماده میاد این کنسان انسان سحنهی رو میبیند نکاتی رو استنبات و استفاده میکند گذر میکند در فضای زندگی خودش و شخص خودش پیاده میکند نام این اعتبار و عبرت است چشم رو میدوزید زندگی یک کسی رو میبینید چرا فلان کس شکست برد چرا این زندگی متلاشی شد چرا به جایی رسید، این کار این عمل نقاط ضعف و قوت رو میبینید بر میدارید میبرید تو زندگی خودتون پیاده میکنید نام این اعتبار است این همان از که همیر الممنین بارها میفهمد ما اکثر علیه بر. خداوند پر کرده دنیا را از اعتبار آسمان اعتبار زمین اعتبار پدر اعتبار فرزند اعتبار تمام وجود و اطراف خودمون رو که نگاه میکنیم، همه اعتبار است برای انسان همه در ساموزی دارد که بگیریم نکته ها رو در فضای شخصی خودمون و زندگی خودمون پیاده کنیم و ما اکثر البر و اقل الاتبار مردم ابزار ابرد و اعتبار براشون زیاده اما کم می این اعتبار رو گله امام فرمود فتحه برو ابرت بگیرید به ما کانه به آنچه که فعل خداوند به ابلیس بود چه بود؟ ارض احبت عمله طویل خداوند حبت کرد عمل طویل ابلیس را کلمه حبت در لغت هنگامی که چیزی میرود آبی در یه جا جمع شده میره دیگه بر نمیگرده ما ای که جمع شده حبت الماء اذا ذهب و لم میرود می رود و بر نمی گردد. لم یعود باز نمیگرده اینو میگن حبت در کلام عرب حبت یعنی چیزی از دست برود و باز نگردد فرمود خداوند حبت کرد عمل طویل ابلیس را یعنی محف کرد. از میان برد مجموعی عمدی را که توضیح می دهیم و چرا ای اون بازگوگو می شود کلمه یه هبت اصطلاح قرآنی می دانید که در قرآن این کلمه به کار برده میشه شود هبت به معنای نابودی است نابودی اعمال در کنار این یه واجه دیگه هم داریم که در علم کلام بزرگان از خاجه توسی تجرید و اعتقاد بگیرید به این طرف همه بزرگان این بحث رو مطرح می در علم کلام حبت و تکفیر. تکفیر آیا می شود اعمالی که انسان انجام میده محو بشه نابود بشه؟ آیا با عدالت اللهی سازگاری دارد این اتفاق می افتد؟ یعنی چه کاری ممکنه ما انجام بدیم که یه عمر عمل از میان برود؟ تکفیر عکس اون یه سری رفتارهای زشت داریم ما در زندگی آیا میشه یه کاری بکنیم که این رفتارهای زشت ما حال از بین بره آیا این دو حالت تصور داره بله هفت در قرآن در دو چیز مسلم است عزیزان یعنی با دو کار مجموعه اعمالی که حتی خیر انسان انجام میده چون هفت در مورد کار چیست کار خیر و مثبت مجموعه کار خیری که انجام میده از بین میرود با این دو چیز یک کفر دوم بوم شهری. كذبوا زینه و با آیات نو قائل آخره آنها که کفر به خداوند هم به آیات الهی به جهان آخریت، با آخرت اگر هرچه عمل کرده باشند تمام مادوشان محفوش و قدم ما, ما عمل من عمل فجر نه هباآن منصور. کسی که با کفر میمیرد، اگر شهست سال، ست سال ایمان داشته عزیزان خوب دفت بفرماید اگر کسی ست سال اینجا تو مهرابیست داده باشه اما روز آخر عمرش به کفر جان بدهد تمام اعمال محف میشه یعنی نمیتواند این اعمال را با خود به قیامت برساند همینجا در دنیا چگار میکنه؟ رها میکنه ولی ی وقتی عرض می کردم خدمت بزرگواران ملاک عمل کردن نیست در دنیا صرفا رساندن عمل به جهان آخرت است لذا شما تعبیر قرآنی این رو چه می من جا الحسنه فلهو عشق و ها و من جاعب سیعه جاعبه هین چیزی رو بردن و رساندن جایی کسی که حسنه ای را به قیامت می رساند. نه اینکه که حسنه انجام میده. نه اینکه فقط سیعه انجام میده اگر سیعه با انسان مان تا قیامت جدای از ما نشد حسنه با ما مان تا قیامت و جدای از ما نشد بله بعد فلهو عشق و همسالها ده برابر میشود یا مساوی با همون جزا داده میشود بدی نه صرف انجامش دقت کردید این خیلی ذریعی از گرز کردم در باب هبت و تکفیر پس حبت در باب کفر رو میبینیم میفهمد عمل میکنن اما وقتی میان تو این عالم هیچ نیست هوا این منصور و قبار پراکنده هیچی ندارن توهی دست و خوابی این کفر در مورد شهرک هم آیه ایتکاندهندهی که پشت انسان با میلرزاند و لَا اِن اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُوك پیامبر حتی تو اگر به ورزی اعمالت رو حبت میکنیم و تمام باطل. پس ما در کفر و در شرک کسی که ما تعلی کفر و ما تعلی شرک با کفر و شرک بمیرد هیچ عملی رو با خود به قیامت نمیتواند ببرد چیزی باقی نمیماند برای او این میشه هفت نقطه مقابلون هم تکفیر ساده ترین و آلی ترین آیین که به ذهنتون سلیمی میآید انتشتن بو کما ارماتان هونان نکفران کم سنیاات اگر شما کبائر رو اجتناب کنید و به کناری بگذارید ما سیعاتتون رو تکفیر میکنیم از بین میبریم روانتر و ساده در ذهنتون الحسنات حسنات میاد و سیعات را از زندگی محف میکنه نمیذاری اینها به قیامت بیایند این میشه تکفیر پس حبت و تکفیر در خود قرآن وجود دارد امیر فرمود احبت خدا حبت کرده، عمل طویل ابلیس را مجموعه اعمال سنگینی که او داشت و جهد جهیدش را جهد نهایت تلاش را به کار بستن تمام وجود را مجتهدانه به کار بردن با تمام سعی بلیق جهد جهید او را خداوند حبت کرد حالا چی بود این عمل طویل و کان قد عبدالله به این ابلیس عبادت کرده بود خدا را ست تا سنه شش هزار سال عبادت اونم نه از جنس خمشدن نیست دادن ما از اون جنس عبادتی که کروبیان قدسیان فرشتگان الهی دارن از اون جنس عبادت ابلیس انجام داده بود اون عباداتی که مح و مستقرق در جمال و جلال میکنند آبدرا قد ابدا ناسد تا تا آلاف سنه سریعا داخل پرانتز امام میفهمند جمله معترضه به اسطلاحش به ملی لا یدرا امام نمیفهمد لا عدری نمیدانم بلکه میفهمد لا یدرا معلوم نیست دانسته نشده است امام میداند باید بداند به تعلیم رسول خدا و به تعلیم الله قاعده مطلب اینه نمیفهمد من نمیدونم میگه لا یود را یعنی نمیدونی دانسته نیست برای شما مچول است برای شما فعل مچول به کار میبرند که این مقدار 6000 سال یعنی 6000 ضرب در 365 یا 6 یا بفرمایید 365 رو به کناری بگذارید بگید 6000 ضرب در 365000 یا فراتر از آن اگر تعداد سالها رو از جنس سالهایی بدانید که هر روز اون پنجه هزار سال شماست عدد چی نیشه امام اون حیمنه عدد رو نمیگوید میخوامد لا یدرا یه بیشتری به کلام میدهد که از این سالهای دنیاست یا از سالهای جهان آخرت چی شد که خداوند حبت کرد به چه جرمی شش هزار سال عبادت ابلیس رفت ان کبرس ساعتین واحده از این یا یان که در پیشگاه حضرت باری تعالی الله اکبر دیروز اشاره کردیم خدمت دوستان از ابتدای خطبه نورانی گفتیم جان مطلب رو اشاره کردیم اساساً امام اشاره فرمود امام المستکبرین از ابلیس به امام المستکبرین یعنی بنیانگذار و جلودار مکتب تکبر و استکبار یاد کرد وجود نازلین حضرت یعنی آتش به جان شمف تدکین بنا ناد اولین کسی که در وجود و آفرینش بنا ایستادن در پیشگاه خداوند به استکبار در مقابل حضرت حق و گردن کشی در قبال خداوند آغاز کرد ابلیس بود اولین کسی که گفت انا چرا سجده نکردی؟ چرا چنین توجیه تو از این تمرد چیست؟ انا خیرون به از منیت و برتری زد خود رو فراتر دید و دیگران رو از خیش پسته اما مشکل اصلی اینه ببینید این است. اما ما دو کبر داریم عزیزان یک کبر در قبال خداست یک کبر در قبال بندگان ساتباری تال هر دو زشت و ناپسند و مزموم شاخه های کبرند اما این در قبال ذات باری تالاست همونی که شما در قرآن میخوانید ادعونی استجب لکم بعد شما این رو ادعونی یعنی دعا کنید حالا به قرینه ای ادامه آیه که دارم می خونم این ادعونی یعنی اعبدونی اعبدونی مرا عبادت کنید که با دعا این عبادت رو نشان میدهید. کیبوتت کنند هستید ادونی است تجبلکم ان الذين یستكبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم الاخرین اونها که استکبار از عبادت من پروردگار می کنند شد؟ استکبار از بندگی و عبادت حضرت باری حالا یعنی استکبار در قبال خداون یعنی نعوذ بالله علی آزو بالله یعنی پروردگار من به تو نیاز حاجتی. ندارم من خودم تأمینم سر بندگی تو را ندارم ما خودمون میدانیم چه بکنیم وجود ما از خود ماست، نیازی هم به تو نداریم زیر پاگزاردن اون چه گفتیم یا ایوه الناس انتم الفقراء الله والله خبالغنی امین چو باری تا حالا قناعی متصور نیست در وجود و هیچ موجودیتی استقلال ذاتی ندارد حکما میگن وجود ما ربطیه اگه رشته رو ببریم تمامه اگر نازی کند جانان فرو ری ها وجودی باقی نمیماند برای هیچ موجودی اگر افاظه حضرت فیانز نباشد وجودی باقی نمیماند این کبر در قبال خداوند است یستکبرونن عبادتی اونها که در قبال بندگی خداوند وجودی مستقل برای خودشان در پیشگاه ذات حق میبینند و خود رو مستقلی از حضرت باری تالا استکبار در قبال حضرت سبحانی داشتند این استکبار اوج استکبار ابلیس از این دست بود یعنی گذاری این مکتب بود استکبار در قبال خداوند استکبار در پیشگاه حضرت حق کرد و ببینید معتقد به استکبارش بود ابا و استکبر و کان من الکافرین بحث بحث فکری و اعتقادی بود هم در مقام عمل چنین بود هم در مقام اعتقاد و حقیده. دیروز توضیح دادم گاهی نماز نمی کسی از سستی را کندی گاهی نمی خاند از اعتقادی اصلا نماز را باطل و بیهوده میداند. ابلیس این دومی بود. یعنی اساساً به طور کلی قائل به این امر نبود. و خود رو بینی از و مستقنی از پذیرش امر خداوندان است. از اون اوج کفر رو شما در عمل او می بینید. به کافی است. به مجرد اینکه به کوی استکبار و کفر تا گذار دیگه چیزی از سابقه و پیشین ابلیس باقی نماند از بله به دنبال این دیگه به آدم هم تکبر کرد تواضع و رتبه و جایگاه و برتری علمی آدم رو هم نپذیرفت یعنی تکبر در قبال خدا به تکبر در قبال بندگان خدا هم می شود عزیزان در قبال بندگان خدا هم خواهد شد مسلم اما از اونجا آغاز شد هفت کرد ذات باری تالا گوهی امارت ها نمونه اون رو در اون صحنه های چنانی و صحنه سازی های اونچنای دیدید در اون برجی که داده شد و دو کشور گرفته شد دیدید که چگونه پایین آمدون برج های آ استریت دیدید با چه نظیتی. وقتی حال ساختمان عظیمی رو یه پروژه این که این فرض کنید مثلا صد طبقه است. این میخواان از بین ببرندش و چقدر طول کشید این پروژه رو ساختن با چه محاسباتی با چه بودجه با چه وزیعتی. در چند سالانی میرمش پایین؟ در چند سال می پایین میاد؟ همین است. یه انفجار آنی میبینید پایین اومد. شش هزار سال ساخت ابلیس امارت عبادتش رو اما انکبر ساعتن واحد پایین آوردش با یک گردنکشی مقابل خداوند و ایستادن و دم از زدن تمام هر چراکه ساخت و پرداخت ویران و تباگر انکبر ساعت واحد. و من ذا بعد بلیش یاصل ماان نا به مثل معسییت حال دقت بفرمایید از اینجا ما میخوان بهره برداری خودش رو، بیان بفرمایند و با ما سخن گوید فمنزا بعد از ابلیسی اسلام و الله به مثل منصیت چه کسی بعد از ابلیس با اون سابقه درخشان با اون ویژگی با اون عبادت چه کسی میتواند با چنین منصیتی که ابلیس دارد در نزد خداوند سر به سلامت ببرد و سالم به آخرت برسد و به پایان و فرجام برساند عمر خیش را و وجود خیش را. یعنی چی؟ یعنی چگونه خداوند چنین جرمی رو بر ابلیس با اون سوابقی که تکبر عزازیل را خار کرد به زندان لعنت گرفتار کرد با اون فرضی که دیروز گفتیم و امام هم الان تأکید به آن می کنند که ابلیس از فرشتگان باشد نام او عزازیل بود میگه جبرائیل میکائیل ایل خدا اون پسفند اولیش یه چیزی مانند جبرائیل مثلا عبدالله میکاییل عبیدالله تصور بفرمایید. فرمود فمازا بعد ابلیس چه کسی بعد از ابلیس مثاله میماند از این طاعت و بندگی زاتباری تالا با این معصیت و با که بره خیلی جمله جمله است. یسلم و حالالله به مثل معصیت کلا خدا هنگامی که چنین جرمی رو از ابلیس نمیپذیرد به طریق اولا از هیچ کس نمیپذیرد از شما انسان ها هرگز نمیپذیرد حالا اوج میگیرد سخن ما کان الله سبحانه لید خیلن جنت بشرن به امر اخرج بهی من ملکا مگه میشه؟ خدا به جرمی که ملکی را دقیق بفرکنید ملکی را یعنی چی را؟ یعنی ای را خداوند به جرمی که ملکی را با اون جرم از بارگاه قدسخیش راند و طول و دور کرد چگونه ممکن است یک انسان را با اون جرم به بارگاه قدسخیش و جمار خود اجازه ورود و نزدیکی بدهد انسان ها خداوند هنگامی که با کهی فرخواسته کبر فرمود فخروج فه اینکه رجیم فه این علیکه لعنت الدین برو مترود دور و تا قیام قیامت تا انقراض وجود لعنت من بر تو باد چگونه با این جرمی که خدا ابلیس را رنده است اگر انسانی مبتلای به کبر در پیشگاه ذات هر شد و این پیشانی را به زیر به سمت و سوی بندگی نیامد. در پیشگاه ذات باری تعالی مستکبرانه رفتار کرد. با بندگان اون خوبی متکبرانه رو پیش گرفت. چگونه خدا با این وجود انسانی را به مقام قرب و جوار خیش میبرد که ملکی و ای را به این جرم رانده است و برون افکند است. مگه میشه؟ که حق چنین کند. این که در روایات داریم عزیزان لاید خلال جننه من کان فی قلبهی مسقال حبت من خردن من الکیبر هر کسی که به مقدار یه مسقال زره از یک اسپند در قلب او کبر باشد به بهشت وارد ننشند این از سخنان نورانی زهات مقدسه محمد و آد محمد فرمود به امرن اخرج به منها ملکا استعزار دارید ببینید امام خداوند چگونه انسانی را با جرم و اتهام کبر به مقام قرب و جوار رحمت خیش وارد می‌کند و حالی که ملکی را با این جرم برون رانده است اصلا ملاحظه فرمودید اخرج به منها از اون جنت قرب خودش ملکن ملک معنای جز فرشته ندارد از ایجان معنای جز فرشته نداره لذا اون بزرگانی که گفتیم در تقسیم نظر دو نظریه‌ای که وجود داره اونها که قائل به فرشته بودن و ملک بودن ابلیس از ادله‌ای که استدلال می‌کنند همین فرمانش امام علی است اونها که این آنوند شیخ طوسی اونهایی که مخالفن نقطه مقابل وجود دارن و رد می کنند این رو میگن مراد امام از ملک استعمال مجازی است یعنی یه موجودی که مثل ملک بوده است دیگه یعنی ابلیسی که یه جنی بوده است که نفوذ در به استلاف فرشتگان کرده بوده مثل ملک شده حالا چه دلیلی برای این استدلال دارن چرا باید لفظ ظاهر کلام امام را ما از حقیقت به مجاز ببریم بچنین معنایی بگیم خود دانند خود دانند ظاهر مطلب این نیست کلا ما کان الله سبحانه و تعالی دخل الجنه بشرن به امر نخرج به منها و ملکه ممکنه شما بگید که نه خب حالا خداوند اگر با ابلیس این کار رو کرده است چون ابلیس چی بوده خیلی نزدیک بوده قریب بوده حسنات الابرار سیعات المقربین چون قرب به خدا داشته است هر که با مشبیش برفش بیشتر یکه او رو خدا نمی اما خدا در مورد ما کوتاه می آید به که ما خاکیم زمینیم شهوات امیان میل ها و کشش ها بالاخره ممکنه ممکن هیچ چیزی تو ذهنمون بیاد سریعا اميرالمومنین پاسخ میده میگه اشتباه نکنید نکنه فریب ذهنی بخورید ان حكمه في اهل سما و اهل الارض لواحد بدونید قانون خدا در اهل ملکوت و سما و در اهل زمین یکسان حکم خداوند در اهل سما این سمایی که میگم دیگه میدونید یعنی آسمان مردی خوبشتری و که کشان شیری نیست. اون همان است که یدب برال امرمن از سما احلال عرض. یعنی آسمان ملکوت یعنی عالم ملکوت که خدا از اونجا تدبیر امور بر این جهان ماده می کند. فرمود حکم خداوند در آسمان و در زنین یعنی در میان فرشتگان قدسیان ملاقشت الله و در میان انسان ها لواهد یه م بعد ممکنه تو ذهنتون بگید که بالاخره مزرعه سبز فنک دیدم و داس مهنو نو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو گفتم این نفس به خوشبیری و خورشید دنید گفت از مرحمت سابق نومید مشو بگید ما كانت بگید یک نسبتی داریم با پیامبر مکرم ما از فرزندان صدیقه طاهریم ما از فرزندان امیرالمومنین ما چه ارتباطاتی رو با خدا داریم اصلا ما یه سوابقی با خداوند داریم شاید خداوند در حق اونها که یک پیشینه‌ای سابقی دارن چنین رفتاری را نکند مراعاتهاتشون بکند نسبتی چیزی این جمله از یهودیان قرآن و از نصارا بازگو میکنه گفتند نصارا و یهودیان که چی نه ابنا الله و او ما دوستان خداییم ما رفقای خداییم ما با هم رو و نمک خوردیم ما با ذات باری تعالی ثواب می‌داریم ما چنین و چنانیم یا دو، الینا هادو انزام تمنکم اولیاه الدوه من دون الناس بگو پیام برای ها اگر به ما می‌گویند اولیا اولیای خدا جز مردم نه مردم شما دوست و ولی خدا هستید و تمنوا الموت ان کنتم صادقین بسیار آرزوی مرگ بکنید با تو بی‌نظرفت بس کنین کاری نخواهید کرد فَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ عَبَدَمْ هرگز اهلین این هفهانی سید این دروغ ها و لافسنی ها کجا کجاست؟ امیرال مومنین چه زیبای این شبه را جواب میده میفهمت حواستون باشد ليس الله, الله و ما ما بین ما بین الله داده دین احد من الخلقه بین خدا و بین هیچ کدام از بندگانش و خلقش حواده وجود ندارد حواده یعنی محابه آمده شد دوستانه خیشاوندی بین خداوند و بندگانش هیچ کدام رابطهی ویژهی وجود ندارد خیشاوندی و دوستی وجود ندارد که در حق یک کسی خدا اغماز کند دیگری را اغماز نکند یکی را رها کند و دیگری را بگیرد خداوند با هیچ کدام از بندگانش رابطه متفاوتی نداره. ندارد ان اناسا که اصنان الموشت مردم در پیشگاه خدا مانند چی‌اند دانه شانه یکسان قد اونهایی میاد بالاتر و بلندتر میشن از این های شانه که یا تقوا داشته باشند یا علم داشته باشند یا مجاهده داشته باشند سه تا عامل فضیلت و برتری انسان از دیگران و الله هیچ خبری نیست ارغو نیست بین خداوند بین احد المنال خلق حوادث فی اباحته من حرمه علی العالمین در این که بیاد مباه کنه آزاد کنه بر خودش یه ممنوعیت ها و محدودیت ها و قرق های توضیح دادم اونروز. اون روز اون قرق که خداوند بر بندگانش و بر عالمین حرام کرده است مگر میشه الله اکبر بر خداوند حرامی را از کسی بپذیرد و از دیگران نپذیرد چنین قانونی وجود ندارد خونه هیچ کس رنگین تر از دیگران در پیشگاه خداوند نیست اینه که گاه رسول خدا می فرمود امیر المؤمنین رمود. رمود اگر منم مقصیت کنم هیچ تفاوتی ندارد نه اینکه من امیر المؤمنینم اگر اسیان خدا بکنم بعد به خدا به خاطر این که من امیر المؤمنینم خدا مقصیت را برای ما رخصت می ده. رفع قلم میکند خدا از ما میگهد حالا تو این چند قلم معصیت رو انجام بده تو این شب تو این روز این ایام این وقت طوری نمیشه مگه ما چنین چیزی داریم هرگز وجود ندارد چنین چیزی خداوند هیچ ارتباطی و هیچ استثنائی قائل نمیشه بد در حکم خیش برای هیچ یک از بندگانش اینه که پشت اولیاء خدا می لرز عزیزان اینه که و نیر نید استغفر الله فی کل یوم سبعین مره انهو لیغان علی قلبی سید المرسلین گل سرسبد کاهنات و وجود محمد مصطفی اللهم صلی اللهم محمد الله و محمد میفهمد گاهی که میخواد یه یک کدورتی رو قلبم بیاد حالا پیامبر کدورتش از چی میاد؟ از خوردن این آب از خوردن نان از خوابیدن به نیاز جسم از ام ابراهیم را صدا زدن پیامبر که از اسیان و معصیت و کراحت و این مسائل نیست از همین نیازهای لازم زندگی اگر میبینم این هوا و قبار دنیا بر قلب من می آید، هفتاد بار هر روز استغفار می انه ليعاول على قلبي باني نستغفر الله في كل يوم 70 مره اینه که اولیاء خدا کاملا حواسشون جمعن کاملا مراقبن که به این محدودها نزدیک حتی نشند چون میدانن هیچ تفاوتی در حکم قانون الهی بین هیچ کس و هیچ کس وجود ندارد. فرمود فی اباحته من حرمه علی لا ادمی حالا حالا که این جمله اتکان دهنده رو گفت امیل المومنی تیر خلاص رو می زند عزیزان و ما رو حشدار می دهند فهزرو عباد الله همیشه گفتم خدمتون آشنایی فهزرو حذر به معنای اجتناب همراه با خیفه الاجتناب و معل خیفه یعنی چی؟ یعنی این اسلحه نام اسلحه در کلام عرب هذر خضو هزار کم، رو بگیرید به اصله میگن هزار. چرا؟ چون تاک است درکشیدی درفت اف شما وارد میشه. تو کاری نداری ماشه دیگه، دو دست ود. میترسه. به اصله چون از اصله ترسیده میشه هزار گفته میشه. یه وقتی بنزاح میکردیم به دوستان میگفتیم اصله هزار است. ترس. داره به که اگر پر باشه ترس. خالی باشه ترس. خشاب نداشته باشه ترس. با این فرق که اگر اصله پر باشه یه نفر ازش میترسه. اون کسی که گلوله به طرف او لوله به طرف او گرفته شده. اگر اصله خالی باشه دو طرف ازش میترسن، همونی که دستشه همونی که اون طرف اینم دستشه میدونه خالی خبری نیست دیگه اینم میترسه. اونم گمان میکنه از پر از میترسد. پس اصله در هر شرایطی چی داره؟ ترس داره. روزه میگن رو باشید. فهضرو عباد الله بندگان خدا فهضرو عباد الله عدو والله بندگان خدا از این عدو والله و از این ابلیس خیلی نگران باشید خیلی مراقب باشید خیلی به ترسید که چی؟ ام یعدی اکم بداعه صلی اللہ علیه که یا یا عمید در مؤمنین ام یعدی اکم بداعه عدی ادو به معنای گذار تجاوز عبور همین ادو رو که میگن ادو چون از مرزا نمیگذنه در ارتباط با ما ان یعدیکم بدائ که شما را عدی بدایش نکند به درد خودش نکند این اصطلاح رو شما رو این می کار میگن از بیماری هاست و مردم ارتباط با جامعه هم دارن مشکلی هم نیست نیست اما بعضی از بیماری هاست میگن در قرنطینه باشه این این طور باشه چرا چون این بیماری چیست آفرین مصری مصری یعنی عدی داره یعنی عدی داره یعنی سرایت میکنه به دیگران میرسد حالا خدا امیرالمومنین میفهمد بیماری شیطان که بزرگترین درد است اولا از کبر امام تعبیر به چه میکنه به درد میکنه درد چون درد های اصلی انسان چیست کفر است شرک است و اون که از دل اینها بیرون میاد کبر درد عزیز من و جی درده حالا بالاخره گیرم که آقا نمیدونم یه مشکلی پیش آمد در دستگاه گوارش مشکلی پیش اومد در این جسم اینا که بالاخره علاج خودش رو داره سیل خودش رو داره تمام اما یه درد که اگر به جانتون فرو افتاد اونو چه می اینو میرید پیش پزشک بالاخره نمیدونم نهایت شما رو میفرستد نمیدونم یه طب و تصویری نگاه می کلینیکی پاراکلینیکی به جوری شما رو بالاخره درمان میکنه نهایت عمل جراحی است. اما عاشقی پیداست از ذاری دل نیست بیماری چو بیماری دل اما اون بیماری که چون خورد به جان و روح انسان افتاد اونو چی چیزی میخواید جرایش اونو اون رو چیزی میخواید بدید؟ دقیق، میزانش، اندازش و مشکلات اون سرطان های روحی رو کنسر های روحی رو چه میکنید؟ چه برا، عوج برا، حسد برا، تمع را اونهایی که فرو رفته تو حجزای وجودی جان این اینها ها درد های است که انسان ها از آن غافل توجه فرمودید امیر المومنین مراقب باشید این شیطان درد و بیماری که داره چیه؟ مصریه و تمام حمتش رو شیطان داره می که شما را به درد خودش مبتلا کند دست از دامنت رها و نکنند تا تا را خود گده نکنند تمام کار ابلیس اینه که شما را برساند به اونجا که خودش رسیده است، و مشمول لعنت خدا باشید، ملعون باشید نمراهم انجودی کن به داره مراقب باشید، خیلی مراقب باشید. الان مطالبی ما میگه گرسن به تعبیر عوامونا سر انسان سود میکشد و انی از تفزکن به و وقتی میخواد شما را به دردش مبتلا کنه بعد میدونی چکار میکنه؟ شما را با نده. ندائه یعنی چی؟ یعنی صدا، نه صدای معمولی همیشه گفتیم باز خدمت دوستان به اذان در قرآن چه گفته می شوند؟ ندا ازان نودیل سلات من یوم الجمع فسعو الى ذکر الله به نماز به ازان ندا هنگامی که ندای ظهر جمعه ازان ظهر جمعه می ازان ندا گفته می شوند بشتابید چرا به ازان ندای گفته می چون بانگ هست. صدای بلنده هیچ قید و بندی هم نداره احتیاط هم نداره اینجا بیمارستان است، اینجا آسایشگاه هست پس از آن صبح نگویید خلاف شهر عطمان بدید از آن صبح باید با خروش از آن در تمام نوبت ها باید با خروش باشه بله اگر شما خواستید بیاید نیم ساعت قبل از از آن رو منزنه بلنگو رو روشن کنید نمی دانم. جوشن کبیر بگذارید پخش کنید. ملکا و ذکر تو بویم که تو پاکی خدایی نروم جز به امان که مرا را اگر بخواید مناجات بگید نه. مناجات مناجات از جاش کجاست؟ نجوایه. بر برخوادتون تو خونه خلوتتون بگید. اما از آن منادایه باد فریاد بزنید. بناد اسلامی و شهر مسلمانی رو خاطر مسیحتی گفتن یکی از شهرهای جنوب خراسان بوده میبختی الله اجبر دمدم سهر که شد یه مرتبه احساس کردم تمام این شهر تکبیره دیدم تمام این شهر تکبیره گمانم این بود که حداقل 300 تا مسجد 400 تا مسجد تو اون شهر کوچک دارن میگن و هر کسی تو پشت با خانه خودش یا تو حیاط خونی خودش داره اذان میگه یعنی اصلا من احساس کردم نزول ملائکه الهی است در این شهر در اون ساعت اصلا ملائکه حاضرند اینجا بالشون رو بند کردن به تعبیر میانه زیر زین پای این مردم چون این برکت مسلمانیش که اشهد و النا و شهیده بشه در فضای شهر اسمان در فضای شهر مسلمانی باید ندا باشه باید خروش باشه باید فریاد باشه پس ندا یعنی بانگ صدای بلند الله اکبر فرمود ان یستفزکم به نداه مراقب باشید این شیطان بانگش رو بلند میکنه بر شما در صدا زدن به دعوت شما تا شما را یستفزکم یستفزه استفزاز استنهاز میگید نهزد نهزد انقلاب نهزد یعنی چی؟ نهزد یعنی یه مرتبه از جاستکان خورد مراقب باشید شیطان داد میزنه تا شما رو یک مرتبه از جاتون بلند تک کند یک مرتبه شما رو از جا بلند کند و ان یجلب علیکم به خیلهی و رجله امام دارن مزامین آیات شریفه رو میگن ها و مراقب باشید که شیطان یجلب و جلب جذب کشیدن ان یجئ يج، یوجلب علیکم بخیل و رجله که یه مرتبه بانگ میزند شما رو میکشات به سوی خودش با خیل و رجله خیل اس سوار رجل راجل پیاده مراقب باشید که شیطان بانگ میزند خروش میکند حمله رو به شما توجهش رو به شما آغاز میکند با سوار نظام و پا پیاده نظام با امکانات قوی و با امکانات متوسط ترش با تمام اصله و ابزار به سوی شما میگاید گاه روش رو داره که اینها قدرتمندانه سوار نظامه گاه یه روش هایی رو دارد آهسته تر و زریفتر با اون عمل می کند حالا اینها رو می بینیم امام توضیح می دهند فلا امری اجازه بدید من این رو بگم فلا امری می دونید یعنی چی فلا امری؟ یعنی به جان خودم قسم به جان خودم قسم به جان من احلی قسم خیلی حرف اهمی رو مومنی قسم رو یاد میکنه. اینها اینا کار قسم خوردن نیستن خدا به پیامبر میگه میگد امر که ان نههم لفی سکرتهم یا یاعمون پیام به جان شریف تو قسم اینا تو مصیف رو دیگه وقتی به اوج میخواد درسته خدا به جان پیامبر قسم یاد میکن امیر معامی فقط امری به جان خودم قسم ل ف و قلکن سحل ید و اقرب غلکن به شدید و رماکن من مکان غریب ف وغلکن سحل سهم یعنی چی؟ یعنی تیر این یعنی چی؟ یعنی وعده به شهر نقشه شوم فوقه یعنی تیر رو تو چله کمان سوار کردن خب گوش کنی؟ چه مراهات و نزیری رو امام میگن؟ دیگه مباید ادبی بماند؟ امام میفهمد شیطان تیر رو تو چله کمان گذاشته فوقه لکم سحمل وعید و اقرقر علیکون به نزع شدید وقتی کماندار چرخش چاکی وقتی بزند تیر با چشم اسفندیار جهان تیره شد پیش و نامدار وقتی این کماندار تیر رو گذاشته تو چله کمان حالا نوبتی چیه که زهر رو بکشد وقتی رسید این زهر رو تا جایی که هید که صدا از چ... این قوس بلند شد از کمان صدای چکشک از این بلند شد نام این انزه شیطان تیر رو تو چله کمان گذاشته زهر رو تا آخر کشیده اقرق علیکم به نظر, به نظر شدید اتفاقا فاصله هم که این تیر رو میخواد رها کنه به طرف شما و رما کن من مکان قرید تیر تو چله کمان زهر کشیده شده فاصله هم با شما یه متره آیا این تیر خطا می نه این مشکل کاره است. و رماک و من مکان قریب تیرش آماده هست. تو چنده کمان زهرم کشیده فاصله هم با شما نزدیکه لذا اینکه بزند به اون سیبل و هدف احتمال اون بسیار بالاست من مکانم قریب چرا مکان غریب؟ این تیری که تو چلی کمان کدام تیر است در چلی کمان مکان غریب کدام است بنشر الوسواس الخناس اللذی و وسف صوفی صدور الناس قریبه نزدیک تو وجود خود ماست یعنی از طریق نفسمون میاد وارد میشه و این تیری که تو چلی کمان داره وسوسه رو راه میکند به طرف ما از قریب راه میکنه. فقاله فهین این ابلیس گفت رب به ما اقوی تنی لعوزینن لهم فیل عرض و لعویین هم هجمعین اون روز اول گفت به خداوند که پروردگارا به ما اقوی تنی به سبب این که من رو اقوی تنی ببینید ممکنه جزه مگه خدا شیطان رو اغوا کرده است وجهه به اصطلاح ملائم سخن اینه که اقوا قوایت به معنای گم کردن هدف است به خواسته رسیدن است رب به ما اقوهی خدایا چون منو از خواستم دور کردی نگذاشتی من بخواستم برسم خب به دلیل این که سجده نکرد خداوند اینم از اون جایگاه که داشت و از اون قرب و از اون مقام شریف دور کردی که ذات باری تالا بیرونش کردی میشه اقوا رب به ما اقوهی تنی لعوزی من از تمام ساز و کارها استفاده می کنم میکنم، می کنم می آرایم برای ایشان هر که قابل آراستن است در زمین که با جذابیت هایی که ایجاد می کنم اینها رو چی کنم؟ بکشم به سوی خودم ولی آقویان نهم اجمعین و اون رو اقضا کنم از هدف و مقصد ای که تو براشون قرار دانی اینها رو به در بیاورم اما درود خدا باز بر روان و امیر المالی که چقدر زیبا میگد و امید رو تدر موجات میکنه قضفن به قیبن بایید این حرفی که به خدا گفت تیر به تاریکی انداختن بود همچین زورایی نداره که بخواهد همگان را گمراه کند فن به غیب بعید تیر زد، تیر به قیب زد تیر به تاریکی انداختن و رجمن بزنن غیر مصیب به این رجم کرد تیر صد با یک گمانی که حتما اصابت نمی کند به واقع لذا خداوند سریعا گفت خود ابلیس هم گفت خداوند فرمود این نعبادی لیس لکه علیهم سلطان تو بر بندگان من تسلط نداری گفت لاغوین هم عجمعین الا عباد که من من زورم به بندگان خوب تو، خالص تو نمیرسه از همین الان اعلام میکنم پس این نیست که لعوی انه هم اجمعیم به تمام اندامکش رو چنین بکند، اما از اینجا این تکان دهنده میگه عزیزان. ای کاش اونقدر زمان فرصت شما بنده که انسان اینو راه ها نمی کرد. میخوند. میخوند. و ادامه میداد صدقه به ابناء و اخوان الناس اخوان و العصبيه و فرسان الكبر و الجاهلیه. اما ايده از انسان ها اومدن این ادعای ابلیس رو چکار کردن تصدیق کردند. صادق کردن حرفش رو یعنی اون که گفته بود ناقوی انه نهم اینا اومدن دست و خبرت رو به ابلیس دادند و حرف ابلیس درست شد در پیشگاه خدا بند. در مورد بعضی ها کی؟ ابنا الهمیه فرزندان همیت فرزندان تعصبات و قیرت های کرکورانه نابجان و اخوان کسانی که فرو رفته در عصبیت و همیتن امام بهشون میگه ابنا و اخبان یعنی گوه فرزنزاده اصلا این کنین و فرسان کبر و سوارکاران میدان تکبر و کبر اونا که بر اسب کبر تو بشریت سوار شدن متکبران راندند اینها خواسته ای ابدیس را صادق قرار دادن در میان بندگان خدا فرسان کبر و جاهدیت ها که بر عصب کبر و مرکب جهر تاخدند چنین عمل کردن حتی ازن قادت لحل جامهت من کم و استکمهت الامعیت من هم فیکم فنجمت الهال من من السر الخفی ادن امر جلی دیگه امام یه عباراتی میگن یه اشاراتی میگن که به حق خودش میتوان گفت همونطور که از کردم هیچ بشری چنین حرفایی نگفتن هیچ بشری همچین حرفایی نزده فرموت فه و رو عباد الله ان ان بداعه و والله ان یستفزکم ان یعودی کم به دائه و یستفزکم به ندائه اینا انشالله در فرصت های مناسب دارم. میگم فقط یه جمله کوتاه میگم حزیزان استفاده کنیم دیگه بیش از این وقت رو من نگیرم اینا رو در تفسیر شنیدید اون شب هم اشاره کردم سریع ببینید شیطان من نمیتونم این لغت رو براتون بگم یعنی ادب مانه هم میشه که این لغت رو بشکافم برای شما نون ف فی سنقطه نف اولین کاری که شکر میکنه یه دم میده اون تا معنیش چیز دیگه ایک نمیشه بگم یه دم میده اولی کنی ذهن رو مشموش میکنه میده این دم رو لا یه پنجره باز بازه نسیم مختصری میاد اول از طرف شهیدان بعد این رو شدیدترش میکنه نزغ نزغ ببخشید ببخشید با کمال پوزش ادب نشسته این رو اولا این میخی طویل دستشه در میگرده با این میکوبه پشت حیوان این علاقه میکنه اسم این زدن نزغه اماین زغن نکمن از شیطان بعد از این که نفس میکنه بعد نزغ میکنه حالا یه جوری میزنه که بپرونه یعنی خر میکند سمار میشند بعد میخ میزند بعد از نزغ حمز میکنه او بکمن حمزات شیاطین این تیکه آهن تو چکمه پای سوارکار میزنه به زیر عصم میشه مهمیز همز. بعد شیطان همز میکنه حالا میکنه یورت میریم به طرفش همز بعد حوض میکنه استه و ذهلیه ما شیطان یعنی گرفته تو بقلش هر جور بخواد میپیچاند دیگه مسیر ما را میبره یعنی خطواد گامهاش رو یک به یک میاد جلو ماهیت و اون نرمفساری هم که درون این قالب ها وجود داره چیه؟ وسوسه همه اینا با وسوسه هست یعنی کار با قوه وهم انسانه نه با عقل انسان باید از چی استفاده کنه برای پیاده کردن خواست شهوات امیال نه تعقلات نه تعملات نه فکر نه تدبر رفتارهای شن... شیطانی فکر نمیخواد هوا میخواد میل میخواد پروردگارا به زیبا سوحن امیر در این صبح جمعه به حق ولیت ولی زلجلال ولیه از آن به آن چشم و گوش جان و وجود ما را به روی شیطان آگاه آشنا و بینا و شنوا بگردهان و ما را در پناه لطف خودت و قرآن و اهل بیت از شهور شیطانی در طول و عمر مسول و محفوظ بداند